بسم الله الرحمن الرحیم یکی از خطرات و آفاتی که مرور زمان به زمینه کمکاری نیروهای انقلابی به بار میاره خطر شکاف بین ذهنیت نسل های بعد با واقعیت دوره قبل بوده و هست و یک بخشیش البته طبیعی است دورانی که انقلاب شده انقلاب علیه چه رژیمی شده کدام قدرت های داخلی و خارجی در ایران چه میکردند با این ملت و با سایر ملت ها اصلا انقلاب علیه چی شد چگونه شد به چه شیوه ای شد و بعد مداخلات تلاش برای کودتا تحمیل جنگ تحریم ترورها، فشار های اقتصادی جفتازی های رسانهی بین الملل و و و اتفاقاتی که تو این سه چهارده دهه افتاد طبیعتاً نسل شما و نسل بعد از شما شاهد نبودید و خیلی طبیعی است که در مورد اینا هم سوال داشته باشید هم امکان دور خوردن ذهنیت نسل شما داشته باشه برای که وقتی که زمان گذشت دیگه ارتباط انسان با واقعیت قطع میشه تنها ارتباطش با واقعیات از طریق ذهنیاته ذهنیت با خاطره و تبلیغات و اطلاعات راست و دروغ ساخته میشه اخیه مرتبه میبینی بعد سی چهل سال 50 سال جای شهید و جلات عوض میشه جای معروف و منکر ارزش و ضد ظالم و مظلوم عوض میشه خب شما امروز دارید میبینید کسانی که رسانه های خود اون دشمن ختم میدن و اینجای کسانی که ذهن‌های کوتاه و دهان‌های گشاد دارن همون حرفا رو تکرار میکنن و انعکاس میدن یه جوری صحنه رو برای نسل سوم چهارم تصویر میکنن که انگار مثلا با رژیم نگران پیشرفت کشور بوده کمونیستا و آخوندا نمیذاشتن چون که خودشان میگفت آمریکا هم از اوبر جهان آمده بوده کمک میکرده برای پیشرفت کشور مردم ما و ملتهای مشابه چون فقیر و اقب بونده بودن حسادت کردن و کینه های جهان سومی و از این قبیله خودشون به دست خودشون انتحار کردن مانع پیشرفت خودشون شدن نذاشتن یک جامعه متوحش متمدن بشه و بعدم آمریکا کاری به کار ما و کسی نداشته و مدام ما با مرگ بر آمریکا گفتن تحریک کردیم اشوبانیشون کردیم توهین کردیم به مقدساتشون پرچمشون رو آتش و همیشه می‌خواستن با ما مذاکره کنن الانم با ما می‌خوان مذاکره کنن ما نمیکنیم، و از این قبیل. اصلا دقیق جای حسین و یزید رو عوض کردن یه در نادانم یا رو قرزها و کینجوی های شخصی و باندی یا روی جهل و هماغت به های مختلف همین حرفا رو بازتاب میدن در داخل دیدم در فضای مجازی دو ستا از همین آدم که قبلا هم به اسطلاق توی ادعای انقلابیگری و اینا داشتن یه ای دروغ های مسلم و مزخرف که خودشون هم میدونن دروغه اینoverline نمی‌رسن که شناخته بشن بهشون توجه بشه و حالا یه ایده کسایی که نبودن طبیعتاً مثلا بعداً به دنیا آمدن و نمی‌دونن قضیه چیه میگن خب این یک نظره اونم یک نظره حالا ما باید ببینیم دوتا دو تا نظر چیونه مست که بگه یک نظر بگه الان روزه یک نظر دیگه هم باشه میگه الان شبه خب دو تا نظره، حالا باید ببینیم کدومش این واسهت روز یکی از ضرورت‌های امروز اینه که فلسفه کنش و واکنش های دهی 50-60 نسبت به مسائل درست شناخته بشه و آثاری که تا الان داره. آمریکا رو باید درست شناخت که چرا آقا از بین همه زوم کردیم رو آمریکا برای که هیچ حاکمیتی در جهان امروز مثل آمریکا نبوده. تاریخ آمریکا رو باید شناخت دست های آلوده به خون و جنایت تا مرفق ربوت شناخت رژیمی که اصل به وجود آمدنش بر اساس قارت و نسل کشی بوده و الان حدود 100 ساله که آمریکا اصلا مطرح شده یعنی 90 ساله قبلش آمریکا آمریکا نبوده اما قبلش هم جنایات توسط آمریکا به در آمریکا زیاد اتفاق افتاد. آمریکا، مخصوصاً بعد از جنگ به اصطلاح بین الملل دوم که اروپا تو جنگ نابود شد، کل جهان به خاک و خون کشیده شد، عملاً آمریکا از دل خون و خاکستر دو تا جنگ جهانی بدونی که صدمه بوقره. از جنگ دور بود، ولی منافعی دو تا جنگ رو برد. یعنی اگر او دو جنگ نبود، نه آمریکا آمریکا نمیشد. دو تا جنگ باعث شد که نابود شد و آمریکا گوشه بود هیچ ضربه ای تو جنگ نخورد و در هر دو جنگ مخصوصا جنگ دوم که با فاصله 20 سالی دو تا جنگ اروپایی اتفاق افتاد و جهان رو اروپایی ها به خاک و خون کشیدن آمریکا آمد درست نونشو خود به سر سفره نشست بعد از جنگ جهانی دوم شد این آمریکا یعنی حدود 70 80 سال بیشتر نیست و فقط با جنگ و قارت و جنایت و کودتا ادامه داده دوستان توجه داشته باشن بیش از 62 دو جنگ و کودتا آمریکا دقل که اینا دیگه علنی شد حالا کودتاهایی بوده که شکست خورده جنگهایی بوده که مستقیم علنی نیامده ولی پشت صحنه بوده اونا جدا بیش از شست کشور جنگ و کودتا کرده یک کشور معمولی نیست قبلش انگلیس و فرانسه روسیه تزاری بعدم روسیه کمونیستی شوروی و یکی دو تا کشور دیگر اروپایی اینا قاره افریقا رو قاره آمریکا رو قاره آسیا رو به خاک و خون می‌کشیدند قرن 18 و 19 قبلش قرن 16 ویفته اسپانیا پرتغال اینا بعد از فروپاشی اندلس از طریق مسلمانان به کمک اونا رفتن به قاره آمریکا چون مسلمان اونجا آمد داشتن کریستوف کولمبو این حرفا نیست اینا آمریکا رو شروع کردن به قارت و اشغال و الا روابط و ارتباطات و اینا بود کشف نگردن مثل که من بیام خونه شما رو کشف کنم اینجوری کشف کردن آمریکا رو وقتی میگه مرگ بر آمریکا باید متوجه باشیم که در این 17 سال به یک عبارت در این 100 سال از یک زاویه دیگه با چه رژیم و حاکمیتی مواجه هستیم در پنج غاره عالم اینا قبل از اینا به خصوص انگلیس ها جنایت کردن انگلیس ها و فرانسوی ها. حالا کشوری دیگه هم بودن شما میدونی اروپایی ها علا رقم این ظاهر به اسطلاح متمدنشون وحشی ترین و خشین ترین قاره جهان هن. خونین ترین قاره جهان اروپا است. الان نگاه نکنید بعد جنگ جهانی دوم به و 5560 سال اونجا جنگی به اصطلاح زیاد اتفاق نیافت برای که بعد جنگ کل اروپا تحت سلطه آمریکا و با کمک انگلیس و فرانسه قرار گرفت. آلمان هم که اشغال شده آمریکاست. هنوز تحت اشغال آمریکاست. هیچ قاره ای به اندازه اروپا جنگ به خودش ندیده، جنگ های داخلی. اینا فقط ظرف دو تا جنگ که اسمش رو گذاشتن جنگ اول و دوم جهانی در نیمه اول غرنبیست ظرف دو تا جنگ اول و دوم ده میلیون خودشون از خودشون رو کشتن اروپایی ها و این جنگ ها جهانی نبود در واقع جنگ های اروپایی ها است با هم دیگه سر قاره جهان منطقه آتش جنگ به آسیا به آفریقا به همه جا کشندن اینا جنگ های اروپایی اول و دومه ولی قربانیانش جهان بودن بعد آمریکا از را رسیده بعد جنگ جهانی دوم که اروپا ضعیف شد آمریکا آمد کم کم هم بر اروپا مسلط شد خیلی هم در کل جهان چون تنها کشوری بود که تقریبا تو جنگ هیچ ضربه ای نخورده بود اون بر آبها بود سر سفره آمد چید این توجه داشته باشیم آمریکا چگونه آمریکا شد با ما و با ده‌ها ملت دیگه چه کردن اینا مرگ بر آمریکا این چیزی نیست همطوری هوس کردی گفتی یعنی مرگ بر سال جنایت و ستم و کشتار و شکنجه و کودتا و جنگ و قارت که هنوز هم ادامه داره البته آمریکا و آمریکا نیست خیلی ضعیف شده و اسلام خیلی قوی شده ما به خصوص بعد انقلاب ما اگه فرصت بشه به اشاره خواهم کرد فقط می‌خوام جواب اجمالی به این الغای مسخره‌ای که اونا میکنن و عوامل دانا یا نادانشون در داخل که آقا گفتین مکبر آمریکا مشکلات به وجود آمد اگه نمی ما رو تحریم نمیکردن اگر نمی گفتفتیم آمریکا نمیشد اگر لانه جستی رو نمیگرین انان از اقتصادیمون خیلی از بهتر بود میلیاردها ها پول آمریکا می آورد اینجا. آمریکا از اینجا میلیاردها پول برده قبل انقلاب اصلا ایران میخواستن برای که قارت کنن کجا پول رو برده؟ کدوم کشور پول بردن از همه کشور پول بردن به جای پول نیورددن. صحبت این نیست که آمریکا کشور معمولی باشه. امریکا، انگلیس و فرانسه یک کشور معمولی نبودن اینا همیشه جنایت کار بودن به خصوص دارید دو حالا ضعیف شدن الان انگلیس و فرانسه کشورهای درش دو شدن اینا توی دویست سال گذشته اینا ابر قدرت بودن الان ضعیف شدن همین الان انگلیس و فرانسه با هم دیگه بیان حریف ما نمیشن حریف انقلاب به اسلامی نمیشه شکست میخورن خود آمریکا هم شما می بینید داره منطقه که ترک می از کی داره فرار میکنه اولین و تنها کشوری که اینا مجبور شدن برن بیرون ایران بود انقلاب اسلامی بود و حالا تو منطقه در عراق، سوریه، افغانستان، یمن، لبنان، فلسطین همه جا دارن شکست میخورن میرن اقاب این اتفاقات برای اولین بار داره میفته بعد از سقوط جهان اسلام اهمیت ای به مقابمت رو بدانیم که قدره سال، دویز سال قارت، تغییر تجاوز کشتار تا میگن لباساتون رو باید عوض کن لباساتون رو باید تن‌تون در بیارین زبانتون رو باید عوض کنین خطتون رو باید عوض کنین دینتون رو باید عوض کنین سیلی و نخورده بودن برای اولین بار ادس امام و انقلاب خوردن وقت فت لانه جاسوسی رئیس جمهورای آمریکا گفتن در تاریخ آمریکا ما اینطور تغییر نشده بودیم و بوت آمریکا رو ایران شکست اول با اصل انقلاب و سرنگونی شاه بعد بوفات لانی جاسوسی و الانم که مناطق کشورهای مختلف از تحت کنترلشون در خارج میشه اهمیت مسئله رو بدانیم آمریکا اینجوری یک گرفته ده ها میلیون آفریقایی سیاها ده میلیون صاحب پوست‌ها ظرف دو سه قرن چهار غرن از بین رفتن تا آمریکا درست شده بعد که درست شده تازه بین خود اروپایی ها با هم دیگه اینا که از اروپا آمدن آمریکا رو اشغال کردند، بین خودشون شروع میشه جنگ های داخلی آمریکا اینا باید به بقیه مخوان درست تمدن بدن نزدیک یک میلیون خودشون از همدیگر رو کشدن سر جنگ های داخلی جنگ که چار پند سال بیشتر طول نکشیده در قرن اواخر قرن 19 یک میلیون خودشون که او زمان امریکا کل جمعیت آمریکا حدود سی میلیون بوده و نزدیک چار پند میلیونشون برده بودن این شما ببین یک کشوری که تازه بعد از اینکه اون همه بردا رو کشتن از بین رفتن و نسل ها و نابود شدن و که اینا رو مثل خروغاف به خیش می‌بستند و قضا بهشون نمی‌دادن تا اینا کار کنن و جنایاتی که بر سر اینا آوردند خودشون جنگ بین خودشون افتاده جنگ های شمال و جنوب کشوری که 30 میلیون عدو جمعیتش بوده و نزدیک 5 میلیونشون برده بودن تو جنگ داخلی یک میلیون از همدیگر رو میکشه. بعد قرن 19 رو میشه تو قرن 19 آمریکا هنوز قدرت جهانی نیست ولی قدرت قاره شده یعنی شروع میکنه به کشتار و جنگ و اشغالگری داخل خود قاره یعنی قاره آمریکای مرکزی رو و آمریکای جنوبی رو تو اورور امریکہ میگه اصلا اینجا که کلا حیات خلوت ما از اروپا و آسیا و همه جا جداست اینجا که هیچ ٹیکساس رو از مکزیک میگیره بعد خود مکزیکو چه میکنه بعد اونجا پنج تا تا کشورای که آمریکای مرکزی رو تا الان شاید به هر کدوم از اینا پنج بار حمله کرده اشغال کرده میره ادمای خودش اونجا میزنه باز بعد مثلا سه چهار 5 سال بعد موقعیتش ضعیف میشه یا قیام مردم میشه دوباره لشکرکشی میکنه میره مثلا شما پاناما نمیدونم کشورهای خورده آمریکای مرکزی اینا اصلا دمه دست مثلا هر وقت حوصله اش یکی تو سری میذاره میره اینجا اشغال میکنه مثلا میاد شروع میکنه خارج از کشور حمله کردن مثلا میره فیلیپین رو میگیره فیلیپین اصلا میدونید فیلیپ پادشاه اسپانیا بوده اسم این کشور رو اسم پادشاه گذاشتن فیلیپین یک سرزمین اسلامی بود مردم مسلمان اینم جزء سرزمینایی بود که یا اشغال کرده بودند این اندونزی، مالزی، این کشورهای شرق آسیا اینا همه چه مسلمان چه بودایی و هندو این کشورها همه تقریبا تحت سلطه هلندیا، انگلیسیا، فرانسویا، آلمانیا اینا بود. آمدن گرفتن. همه اتفاقات تو این 100 سال، 150، 200 سال افتاده بود. و کل دنیا رو شروع کردن به قارت یک سرزمین مستقل آزاد نذاشتن. این میگن قرب استعمار قرب بدونی چی بوده بعد شما اسمشو میشنوید یعنی یک بیگانه بر تو مسلط باشه به همسرش به مادرش تجاوز کنه به زنش تجاوز کنه رو قارت کنه اگه بهش نگاهه یک کمی ناراحت بکنی ببره شکنجت کنه لختت کنه هر چه داری ازت بگیری که از گرستنگی داری رو معادن تلا از گرستنگی بمیری بعد توهین کنه بهت استعمار چیز میگن مرگ بر استکبار, استکبار شما تو ایران مزه استکبار نکشیدین چون شما در ای به دنیا آمدید که ایران آزاد بوده ایران انقلابی که خودش داره مبارزه ضد استکباری بوده قبل از انقلاب باید میدیدید که امریکایی ها انگلیس ها, ها که نزدیکه صد هزار مستشارشون اینجا بود چه میکردن با این مردم مثلا گروبان آمریکایی دست زن ایران رو می جلو خودش می برد او هم باید می آمد در ورش باز میکرد من برین خوش بگذر اینجوری بودن یا یا انگلیس ها رئیسای ها رئیس های دانشگاه های ایران بدون اجازه اینا اجازه نبود. رئیس دانشگاه بذاره و وکلا مجلس که اصلا انتخابات واقعی نبود غلابی بود لیست نمایندار باید سفارت آمریکا انگلیس باید اس نفت کلند دست اینا، ارتش دست اینا، صدا و سیما دست اینا، سواک پولیس دست اینا، آموزش شکنجه های مدرن، اصلا شکنجه گره سواک می انگلیس، اسرائیل، آمریکا آموزش میدادن آخرین شیوه های مدرن شکنجه را، از حدود، پنجاه کشور جهان شکنجگر ها رو میآوردند کشورهایی که تحت سلطه آمریکا بود پنجاه کشور همه رو سالیانه می بردن اونجا آموزش میدادن بعد به شکنجگرها ایناگفتن تو تجربیات رو به اینا بگو اونا تجریات رو به اینا بگن مثلا پلیس های آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا و اینا با همگه انتقال تجربیات میکردن که مثلا چجوری ناخون بکشی بهتر جواب میده چجوری بزنی مثلا ف بشکنی چجوری بهشون تجاوز کنی، کار بکنی، چهجوری بسوزونی بدنشون رو؟ اینا بودن آمریکا، ایناس، انگلیس، آمریکا. خب اینا با دنیا اینجوری برخورد کردن. هیچکیشم جرأتن که بیشی. یک زمان مگر شوروی روسیه کمونیستی که رقیب اینا شد، هم بر نصف جهان مسلط شد، با شعارهای چپ انقلابی ولی خودش مثل آمریکا یا و انگلیس یا همونقدر جنایتکار و آدمکش. اونطا با شعارهای چپ و سوسیالیستی و اینا ولی همون جنایت را آمریکا رو می‌کرد. همونقدر کشتن بلکه بیشتر کشتن دنیا تقسیم شده بین ای دوتا یه مرتبه نشرقی نغربی امام میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی میگه الان شما نگاه نکنید ممکن الان اهمیت ایشاره رو نفهمین او زمانی این حرفا آمد که اصلا دنیا شرق و غرب بود بین ای دوتا تقسیم شده بود هیچکس اصلا فکر نمیکد به یک شقی سال. نه شرقی نه غربی. معنیش نبود که نغربی به نه با شرق رابطه داریم نه با غرب ما می خواهیم منظوی بشیم اونا از دستاورده شرق و غرب استفاده نمیکنیم و و این نبود نه شرق نقوی نه سلطه غرب نه سلطه شرق نه آمریکا نه شوروی این بود یعنی یک شعار زده استکباری ضد استعماری در دفاع از کرامت انسان و حقوق مردم و حقوق بشر بود دفاع از آزادی جنگ های داخلی آمریکایا شمال جنوب خودشون زدن همدیگر رو بعد تا یک کمی قدرت پیدا کردن قاره آمریکا رو به خاک خون کشیدن یک کمی قدرتشون بیشتر شد از قاره خارج شدن رفتن فیلیپین و اینا رفتن شمال افریقا با ها اون موقع بعضی کشورهای اروپایی استعمارگر بودن که حالا دیگه چیزی نیستن مثلا حتی دانمارک هلند سوئد بلژیک اینا هم اشغالگر بودن یک تو قرن 19 و اول قرن 20 تو رقابت داخلی رفتن عقب و آمریکا و انگلیس و اینا آمدن با شعاری که ما داریم میریم به جنگ بربرها در شمال افریقا در الجزائر در مراکش در لیبی با مسلمین جنگید الب... تو قرن 18 اباخر قرن 18 ابته شکست خورد کل کشتیاش و مسلمین آتش زدن از بین رفت و آمریکا یه اولین تجربه شکست خارج از قارش بود و بعد از اون در جنگ جهانی اول اینال میگم برای که بدونید بخیال میکنن آمریکا همین تصویرهای هالیوودی از آمریکا رو میبینن فیلمهای هالیوودی خشنی آمریکا اینه آمریکا یعنی مظهر جنایت یعنی فرعون این عصر نمرود این قرن همو که عزت و ابراهیم متع و برابرش می ایستادن هم اینا بودن اینا هم اونان. تمام مفاسدی که همه اقوام داشتن الان اینا دارن مفاسد مظالم فرعون و و قوم لوتو همچنین دارن نو 123 تا از اعضای کنگره امریکا رسما اعلام کردن که هم جنسبازان با افتخار اینا قوم لوط هم هستن قوم شعیب و صالح و هود و موسی و عیسی و همش هم اینا هستن قیصر و فرعون انبیا با همینا افتادن از خدا هم حرف میزنن کلیسا هم میرن رئیس امورشون چون که فرعون مگه نمیگفت به از موسی گفت این آمده دین تون و خداتون رو نابود کنه از موسی رو گفت او هم گفت مذهبی هم من خدا خلق تون کرده هوا خالق. اما انا رب رب کمول اعلا تون منم یعنی همه چیزتون دست منه بله خدا هست خدا خلق کرده ما هم خدا را قبول داریم عبادت چم میکنم معبد داریم خدایان رو قبول داریم فران هم قبول داشت ولی رب به منم و همین که اینا میگن توی ای عصر. امام دقیقا تبر ابراهیم رو برداشت نیمه دوم قرن بیست کودتا هایم و جنگاییم که به جایی نرسید و شکست خورد حساب کنیم ظرف 50 سال یعنی از 1900 مثلا تا دو هزار آمریکا و متحدینش خودش در رأسش صد کودتا در کشورهای مختلف انجام داده که چهه نتاش به جایی نرسیده سی و خوردهش به جایی نرسید چیکس خورد شست خوردهش موفق بود یکی از اولین هم ایران بود سرنگونی مصدق و کاشانی نواب ده ها کشور رو تو اون پنجه سال حمله نظامی کرد در پنج قاره. مذاکره بکنیم مذاکره نکنیم اینجوری. بعد اونایی که اینم گفتن آشتی با جهان آشتی با جهان یعنی ما با جهان نگار قریم ما با جهانخوار دعوا داریم نه با جهان ما مدافع جهانیم جهان از زیر اینا همین سه چهار در رأسش آمریکا آشتی با جهان چرا روابط ما رو با جهان تیره کردین ما رو منزوی کردین شعار انقلابی ما رو منزوی میکنه منزوی کی کشورهای غیر متعهد و دیگران اینا تو مساله هستی به ما رای دادن اونا جهان نبودن، آمریکا و انگلیس و فرانسه جهانه از اینا. با انقلاب نیروهای انقلابی اخم و تخم و توهین و اینا. ملاقاتشون با سفیرای انگلیس، فرانسه، آمریکا میخندن می‌خندن، شش نفر تو دهنشون جا میشن داخلتشون یک سوالی می‌کردی و می‌کنی، مخاط گاز بگیرن آدم رو. این جوریه. دائرا خلاف قران اشد روحما بین رحما بينهم انا رحما على الكفار اشد بينام جليا قلبشون اوبر قبلشون اوبر نمیگم میگم ام خب امريكایی که صد کودتای نظامی و برندازی برای حکومت ها رهبری کرده خودش مستقیم گوی وارد شده ظرف فقط 50 سال یعنی سالی دو تا کشور رو و کشورهای متعددی رو تهدید کرده به حمله نظامی حتی تهدید کرد به حمله اتمی و دموکرات و جمهوری خاصون هم مثل من بanje آقا نه آمریکا جمهوری خواها بدن دموکراتا خوبن جنایات دموکراتا و جمهوری مثل هم بنزی همه, همه. این اونجا کودتا میکرد این کی می اومد ای این حزب دیگه اونجا جنگ را مینداخت این می اومد ای اونجا جنگو ادامه میداد باز اونجای دیگه میرفت کودتا میکرد اینجا این ادبیات چون با هم فرق میکنه او دموکراتیک و حقوق بشری و انجری حرف میزنه جنتلمن ماپ ولی وحشی مثل همین رو عمل میکنن اینا وحشی و خشین هم هم حرف میزنن هم عمل میکنن میشن پلیس خوب پلیس بعد به اصلا که یکی فوش بده بزنه او یکی دیگه مودبانه بزنه و بالاخره تسلیم میکنن می گفتن دموکرات ها خوبن جوری ها بدن یا می گفتن جوری خوبن این یارو ترامپ این بده جمهوری هم خوبن یا آمریکا آمریکابدده اروپا خوبه مگه اروپا خب ده ها کشوره چه کاره هنو کشوره ها؟ بیچواره کاره نیستن کشوره الان تو اروپا مثلا نروژ نمیدونم بلژیک سوئیس اینا چه کاره خود آلمانش کاره نیست میگن پنگ علاوه یک نمیگن شیش اون یکش آلمانه چون مستقل نیست تحت سلطه امریکای هنوز از جنگ جانی دوم تا الان ارتش آمریکا از اینجا بیرون نرفته از ژاپن هم نرفته اشخال کردن دیگه نرفتن اینا میخواستن از اراق و افغانستان و هم نرن تا اینجا دیگه انقلاب اسلامی آمد گفت دیگه باید برید ولی اینا جایی که گرفتن که ول نکردن ایتالیا هنوز تحت اشخال آمریکاست. من دانشگاه ایتالیا جلساتی داشتم بوده پفش سال پیش بود به نزرم یکی از استادای اونجا که عضو شورای شهر میلان او تعریف میکرد که وزیر جنگ و امنیتی نظامی ایتالیا همیل الان هنوز یک قسم علنی به پرچم ایتالیا بود بخورن یک قسم غیر علنی به پرچم آمریکا چون آمریکا در جنگ جهانی دوم ایتالیا رو اشغال کرد دیگه نرفتیم که مگه وزیر جنگ ایتالیا باید بعد بیاد تو یک اتاق خصوصی بین چند نفر به پرچم آمریکا هم سوگند بخوره اینجوری اصلا بعد جنگ جهانی دوم آمریکا تقریباً بر اروپا مسلط شد جمهوریخواه و دموکرات دو جور حرف زدن یک جور عمل کردن هر دو یکی از یکی وحشیتر. بعد جنگ جهانی اول امریکای مقداری تقویت شد اروپا ضعیف شد مستعمرات اروپا رو کم کم مخصن بعد جنگ جهانی دوم که انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه همهشون لطپار شدن اقتصادشون نظامیشون همه از بین رفت. آمریکا این دیگ آورته به سورو رو گوند آمد مستعمرات اینا رو هم برای خودش برداره. تر مارشال که ما میخوایم اروپا رو بازسازی کنیم بعد جنگ. و سلطه اقتصادی و فرهنگی و اطلاعاتی و نظامیش رو گسترش داد به خارج از آمریکا. کشورهای اطرافش در آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی که هر کدوم رو شاید هفتش بار تا الان اشغال کرده. این یعنی هر چند وقتی یا امریکا کودتا میکنه آدم خودشه میاره یا میبینه نشد اشغال میکنه کوبا رو مثلا جز... همین گوانتانامو که دونید جزاخه خاک کوبا است کوبایی که زد آمریکایی بود کمونیست شده بود اینا قبل ازی که کمونیست شه اینا بیای اون موقع مثلا با چند صد دلار کل جزیره گوانتانامو رو به اسم اجاره چند صد یا چند هزار دلار اینجوری گرفته بود بعدم دیگه تو همین الان نرفته نگارش نشد آغاز قرن اشقال هندوراس 1904 اشغال دومینیکن 1904 یک چیزی تحت امان بین المللی درست میکنه توی قاره آمریکا با اسم جهانی جهان آزاد پلیس بین الملل جامعه جهانی دیدی دیدی مسئولین بعض ما باید با جامعه جهانی گفتگو کنیم جامعه جهانی یعنی یه می تا کل آمریکای مرکزی باید تابع پلیس بین الملل یعنی ارتش آمریکا باشه 1907 حمله کرد به نیکاراگوه و آدم خودش اونجا گذاشت. اشغال کرد اونجا رو، یک نوکر اونجا گذاشت. حمله به هندوراس دوباره. بعد باید قاره آمریکا حیات خلوت آمریکا بشه. ایالات متحده باشه. 1910 دوباره آمریکا نیکاراگوه رو اشغال کرد. 1912 دو سال بعد سوموزا خانواده دیکتاتور نیکاراگوئه رو گذاشت اونجا. و ارتش آمریکا در نیکاراگوئه مون که از او حمایت بکنه و یک دیکتاتوری سنگین وحشیانه دموکرات و جمهوری خواهان همین خطو ادامه دادن 1911 دوباره هندوراس احساس خطر میکنن که داره قیام میشه مردم دوباره آمریکا میره هندوراس رو اشغال میکنه 20 سال در اونجا جنگ داخلی راه میندازه هزاران هزار نفر کشته میشن 1915 دوباره هایتی رو میره اشغال میکنه ارتش آمریکا سال بعد حمله مجدد به دومینیکن 1917 نیروی میفرسته تو اروپا به کمک انگلیس و فرانسه و اینو علیه اتریش مجارستان 1918 پاناما رو اشغال میکنه جنگ جهانی اول تمام میشه یه اعلامیه 14 ماده ای امریکا منتشر میکنه تحت عنوان که ما میخواهیم از ملت ها در جهان دفاع کنیم برای که خودشون به سرنویسه خودشون مسلط بشن فقط کردی چهار رو این مستعمرات قدرت های قبلی مستعمرات روسیه آلمان کجا کجا اینا رو میخواد برای چنگ اینا در بیاره یعنی کشورهایی که مستعمره مثلا انگلیس و خودشونن که هیچی اونایی که مستعمره رغباشونن اینا میرن اونجا به مردم بگن شما ما کمکتون میکنیم از تحت استعمار خارج بشید قبلش همی قبلش همین کارو در خود قاره آمریکا کرده. مثلا گفته ایالت تگزاس رو از مکزیک گرفت و جدا کرده. میگه جمهوری مستقل تگزاسه بعد جنگ میشه مکزیک میخواد بیاد تگزاس تجزیه نشه آمریکا میگه در دفاع از جمهوری آزاد تگزاس ما وارد جنگ میشیم تا یاد میکنید مثلا الان که نمیگن در دفاع از حقوق بشر دموکراسی همین الان چی میگن و همین شو ارامیان دیگه قانونی میگذرونه که ولناتو حق تعین سرنوشت خودشون رو دارن هدف اینه که امپراتوریای رقیب مستعمراتشون از چنگ اونا با شعاره به آزادی بخش کمک کنن از دست که بشه تحت سلطه خودش دعوا سر مستعمرات میدونید انگلیس و فرانسه به خصوص در قاره آمریکا خیلی با هم جنگیدن مثلا کانادا یک زمان دست فرانسویا بود کلا بعد انگلیس‌ها گرفتن تا همین الان انگلیس میگن ملکه تشریفاتیه مقام چیزی نداره همه چی تحت کنترل سلطنته کانادا و استرالیا و نیوزیلند اینا تا الانم مستقل نیستن اینا جزء ایالت های از انگلیس یعنی حاکم دارن حاکمشون رو انگلیس تاین میکنه ملکه انگلیس میتونه پارلمان و نخست وزیر کانادا و استرالیا رو با یک فرمان عزل کنه مستقل نیستن اینا هنوز حدود پنج کشور در دنیا تحت عنوان مشترک المنافع و اینا عملا تحت امر بلحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی تحت کنترل انگلیس هم. که انگلیس دیگه او انگلیس نیز زیف شده. در چلو پنج کشور جهان زبان انگلیسی رو تحمیل کردن. در کشورهای دیگه هم انگلیسی زبان دومه که باید تو مدارس اجباری آموزش بده. مستعمرات فرانسه هم زبان فرانسه اونا اونجا میگن زبان علم این اینا میگن کل آمریکا رو اسپانیا استعمار کرده بود کل قاره آمریکا جنوبی لاتین و مرکزی مردم اسپانیولی صحبت میکنن، زبان ارباب بعد فقط برزیل مستعمره پرتغال بود الان برزیل همه پرتغالی صحبت میکنن. میگن زبان علم و زبان جهان پرتغالیه چون اربابشون پرتغال بوده برزیل پرتغالی زبان رسمیه بقیه امریکای لاتین اسپانیایی برای که اونو عربابشون اسپانیای عرباب اسپانیا بودینا هنوز اونجا میگن زبان جهانی اسپانیایی همه دنیا دارن اسپانیایی با همه توقت میکنند بابا با به اسپانیایی بود اینه آقا تا کشور اروپایی کل جهان رو تو این دیویست سال گرفتن دیکتاتوری قارت، کودتا، جنگ، جنگ های داخلی، کشدار امام و انقلاب اسلامی برای اولین بار توانست یک شکاف بزرگ ایجاد کنه این منطقه رو از قدرت از تحت و کنترل هم قرب هم شرق راها کنه و همینطور داره پیش میره مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر چه حاکمیتی مرگ بر چه سیاستی؟ تازه اینا کارایی که هنوز با ما نکردن امامال را وارد ایران و جهان اسلام کشور همسایه خودمون این مناطق جنایاتی که تو این چه پ سال اخیر کردن هنوز اینا جداست. اینایی که اصلا کسی همه یادشون میره بعد جنگجانی اول از رهبران جامعه ملل خودش. قوانینی که اونجا برای بقیه دنیا می‌نویسن یکی یکی تخلف میکنن این قوانین مال اونا نیست هر کار می‌خواد می‌کنه الان حمله به عراق حمله به افغانستان ای کارهایی که کردند همه اینا خلاف قوانین سازمان ملل بود خودشون این قوانین نوشتن برای ماها و خودشون اجرا نمیکنن قانون حقوق زن حقوق کودک حقوق بشر دفاع از حقوق زندانیان دفاع از حق سرنوشت ملتها همه اینا رو می‌نویسن بزرگترین متخلفشون خودشن ولی با ای شعار بقیه رو تو سر بقیه میزنن تا حتی جنگ رو میدازن بزرگترین تروریسم خودشون رو انداختن تو منطقه با شعار مبارزه با تروریسم افغانستان رو قشقال میکنن بمب اتم خودشون ساختن تنها که تو دنیا بمب اتم مصرف کرده امریکا جنایتکار جنگی ها شده رئیس پولیس بمبه اتمالا رئیس دوازده شده رئیس پلیس خودشون متهم میکنن دادستانه خودشون دادگاه تشکیل میدن خودشون قاضی هن. قضاوت میکنه خودشون پلیسن و میبرن اجرا و زندان و اعدام پنجاه زندان و شکنجهگاه داره مثل گونتانو و ابو غریب نفس نبود بگشید حالا بفهم که امام انقلاب وقتی بلند میشه سیلی میزنه و این قدرت و هیبتش رو میشکنه وقتی لانه جاسوسی میگیری و چه تهدید میکنه هیچ غلطی نمیگه میگه داریم میایم ناوگان ما اومه میگه خب بیا چرا نمیای شما اگه میخواستین بیاین چرا رفتین میگه بیا خب بالاخره میای بمباران میکنه اینا حواپ ما اونو از همون بالا میخوای بچرخی یا بالاخره میخوایم بیای پایین بیای پایین تمام چتربازات رو هوا میزنیم یکیتونو زنده نمیذاریم این عارفا پیرمرد بود تو دنیا اول کسی که جرئت کرد بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه ما بود فهمید چه قدرت هایی رو شکستیم آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا پنگ چل و چل سال دارن با ما می جنگن نمیتونن تو منطقه همه دارن علیه ما همه رژیم های فاسد منطقه عمل میکنن نمیتونن نتونستن هی دارن نو عقب میرن انقلاب داره قویتر میشه. مسئله فوق‌العاده حساس اهمیت شو متوجه بشید جنگ جهانی دوم شده خود آمریکا از تو همون جامعه مللی که خودشون ساختن آمدن بیرون خودشون اول تقریبش کردن و بعد جنگ جهانی دوم سازمان ملل رو درست کردن که توسط سازمان ملل جهان رو کنترل کنه یک شورای چند نفره هم اونایی که بمب اتم دارن هر کدومشون مساوی با کل جهانن میدونید دیگه حق تو دقیقاً یعنی قانون جنگل یعنی اونایی که بمب اتم دارن رای هر کدومشون مساوی با کل کشورهای جهانه یعنی کل کشورای جهان بدن به الف این کشورایی ای که بمب اتم دارن یکیشون بگن نه این مقدمه ای مخخص سازمان منالو بشناس چیه باطنش اینه وقتی آمریکا و شوروی این دو تا اول به بمب اتم رسیدن از طریق مهندسای هیتلر آلمانیا که آلمان که خود تو جنگ جوون چون هیتلر داشت بمب اتم می‌ساخت نزدیکم بود هم موشک و پیما که بره کره ما و پیما موشکهایی که کل زمین رو تحت کنترل ب هم بم براتون هیتلر داشت همین کاری که آمریکا کرد داشت هیتلر میکرد آمریکا هیتلر پیروز شده است. هیتلر آمریکا شکست خورده است. همهشون حیواناتی مثل همن تو جنگ جهانی اول و دوم از که میلیون انسان کشنی نه جنگ قدرتی که دنیا مالکی بشه آمریکا و شوروی از طریق آلمان شکست خورده. افسرای نازی هر دوشون هم به بمب اتم رسیدن هم موشکای ساختن که رفتن کره ما بعد سر جنگ قدرت در منطقه آمریکا به انگلیس و فرانسه بمب اتم داد شوروی به چین بمب اتم داد کمونیست بودن اینا بعد هند و پاکستان هم تو جنگ قدرت بین شرق و غرب غربیا به پاکستان دادن شرقی ها اون موقع به هند یک چیز جهانی تشکیل شده بود متاقب پاکستان و هند مستقل نیستن تحت کنترولا چین تا ها تحریم میشد از طرف امریکا و غرب که به بومبعتم داره میرسه نرسه چینی ها میدونه چین هم تقریبا ده ها سال شدیدترین تحریم ها بود متاقب گفت ما تا به بومبعتم نرسیم دست از سر ما بر برنمیدارن ما باید به بومبعتم برسیم تا دیگه خطر حمله به چین و این تحریم ها و اینا تمام بشه و مقاومت کرد بمب اتمو ساخت بعد خودش شد یکی از عبر قدرت ها یعنی گفتن خب پس تو هم بیا جزوی چهارتا بودیم بشیم 5 تا این 5 تا این که بمب اتم دارن شورای امنیت در حالی که شورای ضد امنیت جهان همین 5 تا جنگ و جنایت تو دنیا زیر سر همین پنجتا تا بوده حالا البته چین کمتر حالا تازه به دوران رسید آیندهش ببینیم چی میشه ولی آمریکا، انگلیس، فرانسه کل جنگ های 200 سال زیر سریا بوده. الانم هست. اینا شدن شورای امنیت جهان، سازمان ملل هم اینه. حقوق بشر رو اینا تعریف می‌کنن، دموکراسی رو اینا قضاوت می‌کنن، تجارت جهانی، سازمان انرژی اتمی اینا همه دست ایناش. امام میگفت احمق کسی که فکر کنه سازمان ملل یک سازمان مستقل ملل ملت‌ها و ملل است که هم حتی خواستن کودتا کنن و اینا همشون با هم, هم تقریبا از یک جهاتی اتفاقاتی که تو افغانستان افتاده کودتایی که تو پاکستان شده کشورهای مختلف منطقه همه اینا همینطور شد تو کشور با پول نفت به دستور اون انجام میدن اصلا این کشورها پایگاه نظامی آمریکا و انگلیس الان میلانن این کشورهای خلیج فارس یک پالایشگاه نفتن ولی نفت, نفت سوخت و انرژی دو پایگاه نظامی شنه. ایران از همه ای پایگاه ها برای آمریکا مهمتر بود تو اسناد لانه هست که اگر به ما بگن دو تا نقطه در جهان بخوای حفظ کنی بقیه از دست بره میگه ایران و اسرائیل اینقدر ایران برای آمریکا و غرب مهم بود انگلیس و اینا هم همسایه شوروی بود هم منبع بزرگ نفت و انرژی هم, هم جهات مختلف دیگه بود موقعیت استراتیجیکش و از این قبیل. این چی بوده قضیه؟ اینا حاضر بودن حتی حاضر بودن. اسرائیل از دست بره ایران نگرده. اینقدر برشون مهم بود. تو چین رفته آمریکا نیرو وارد کرده 1922 داشته اولی بوده که داشته دیگه و مخواسته تبگیرش یک به استکبار خارج از قاره هم با ناسیونالیستای چینی جنگیده که اینا مسلط نشن که زده قرب بودن. همون سال در ترکیه که در جنگ جهانی اول عثمانی تقریبا از هم پاشید ضعیف شده بود مداخله در ترکیه میکنه کنار انگلیس همون سال به بهانه که یک شرکت یک کمپانی آمریکایی در فلان یک کارمندش رو تهدید کردن حمله میکنه یا کشور آمریکای لاتین رو اشغال میکنه به همین بانه 1925 مردم پاناما علیه آمریکا اعتصاب میکنن ارتش آمریکا میره پاناما رو اشغال میکنه دوباره اعتراض مردم رو در هم میکنه 1926 های داخلی در نیکاراگوئه رامیندوزن و ارتش آمریکا رسماً دوباره نیکاراگوئه رو کامل اشغال میکنه. و میگه این کشور باید امنیت داشته باشه برای سرمایه‌دارای ما 1929 رکود اقتصادی بر آمریکا حاکم میشه اقتصاد آمریکا وضعیت در 1929 سی اینا خیلی خراب شد به حدی که حدود سی هزار نفر خودکشی کردند به خاطر ورشکستگی اینقدر وضع آمریکا خراب شد رکودی که در تاریخ آمریکا مشهوره نزدیک 15 میلیون کارگر بیکار شدن ظرف یک دو سه سال 20 هزار کمپانی آمریکایی ورشکست شد و نزدیک دو هزار بانک آمریکا ورشکست شدن کل این رفت این باعث شد که آمریکا یه مقداری متوجه داخل شد خارجی یه مقداری ول که چون وزش از هم پاشید ولی جنگ جهانی دوم که شد شروع کردن اصله فروختن و چون اروپا جنگ شد و اینا از دل جنگ و خون واسه شون یه مقداری بهتر کردن در 1942 نیرو پیاده میکنن تو چند کشور آسیایی در 1947 در چین ده هزار چینی رو کشدن امریکایی رفتن وارد شدن در 1950 جنگ کره رو انداختن کره رو تقسیم کردن به شمالی و جنوبی جنگ های هندوچین قبل جنگ جهانی دوم و بیشترین تانک و هواپیما و سلاح و توپ رو تولید میکرد یعنی بنز کل اروپا بیشتر شد منشأ جنگ افزار و جنگ در دنیا سروتمند شدن و بعدم غارت کشورها در هزار و 941 گفت کشتی ها و هاوپیم ها همونو ها اجاره بدیم اعلام جنگ نمیکنیم. کنیم که البته عملا دیگه وارد جنگ هم شدن چون کشتیاش داشت برای انگلیس اسلحه می برد آلمان ها زدن نمونه جنگ ویتنامه که دو میلیون ویتنامی طبق بعضی آمار سه میلیون از مردم ویتنامو رو میلیون ها تون مواد شیمیایی رو سر اینا ریختن و آخرن با شکست مجبور شدن بیان بیرون. فکر می‌کنی آمریکا مثلا با ما خورده حساب فقط داره این تاریخ 25 سال آمریکا بود یعنی از 1900 تقریبا 20 که وارد فعالیت‌های خارج از قاری آمریکا شده به طور جدی تا 1945 جنگ جانی دوم و بعدش جنگ شرق و غرب با ویتنام چه کرد با اون چه کرد مثلا حمله کرد به کامبوج یک میلیون خورده ای در کامبوج آدم کشتن اون طرف خمرهای سرخ که کمونیستای های کامبوج بودن طرف. یعنی جنگ آمریکا به شوروی در آسیا شرقی با هم دیگه در کره ویتنام کامبوج فلان کودتا در اندونزی کرده کودتا بعد از کودتای ما در ایران همینطور کودتای شیلی آلنده در شیلی سرنگونش کرده که سوسیالیست چپ بود سه تا کودتا ظرف دو سال و نیم در آفریقا کرد تو همون مخته رو ساختن که آمریکا و اروپا متحدن قارت کنن حالا این جنگایی که تو این ساله اخیر شد حمله به عراق و افغانستان و دو تا برج تو آمریکا افتاده میان دو تا کشور اسلامی رو اشغال میکنن میلیون ها نفر رو میکشن آواره میکنن خونه هاشون رو خراب میکنن تجاوز میکنن قارت میکنن افغانستان و عراق رو که چی ادعا کردن دو تا برج ما رو اینا زدن که اینا تو افغانستان بودن اصلا فرض کنیم راست میگیید که اصلا معلوم نیست معلو نیست همین که میگن تا بلادن کشتن این معلوم نیست را او بغدادی چکار کردن معلوم نیست ارتباط اینا با هم دیگه اصلا اصل ال القاعده بود اینا رو آمریکا اینجاد کردعل شوری بعد اینا برگشتن یک بخشی از القااعده یک بخشی از طالبان بعد که با شوری جنگیدن پیروز شدن بعد برگشتن عللی آمریکا هم درگیر شدن یه بخشیشون نه شدن دائعه اینا که هنوز با زیر نظر اونا دارن کار میکنن سوریه رو یک جنگ جهانی بود آقا توی هفتش سال در سوریه توی جنگ جهانی ما بردیم به هر کشوری که تسلیم اینا نباشه تحریم، ترور، جنگ، بحران اقتصادی، محاصره، تبلیغات کشوری که از کنترولشون خارج شده یا تحت کنترولشون در نیامده عراق، یمن، لبنان، بله افغانستان که از افغانستان هم فرار کردن تمام این کشورا رو بمباران اقتصادی کردن همه رو تحت فشار سنگین اقتصادی اینا باید یا جنگ داخلی کنن یا اگه به زورشون برسه اشغال کنن هر زورشون نریسه ترور و تحریم اینه آمریکا وقتی میگه مگبر آمریکا بدون با کی داری حرف میزنی راجبه چی چه حیولایی داری حرف میزنی البته آمریکا آمریکای 40 سال پیش موقع انقلاب نیست اون موقع آمریکا یه بشکن مزد رژیم رج عوض می شد. از افغانستان فرار کرد از عراق نمی تونه جلوی موجه بیداری انقلاب اسلامی بیسته دو جلد آخر صحیف نور رو بخونید موازه و صحبت های رو دقیق تحلیل کنید ببینید اینا سمره دویست سال مبارزه است و تنها تجربه پیروز در برابر اینا همه جا شکست خوردن نه از اتا فقط اینجا ما پیروز شدیم شما دیدیدی بیداری اسلامی در مصر ظاهران پیروز شد شکست خورد دوباره برگشتن در تونس تو تدهشون انداختن فشار اقتصادی درگیری داخلی یمن رو کردن جنگ داخلی سوریه شد جنگ داخلی افغانستان رو بانکاشون رو خالی کردن یعنی فرهنگی اقتصادی سیاسی نه باید تسلیم شید وقع انقلابی بودن مغل بر آمریکا مغل بر انگلیس نمیدونم نه شرقی نه غربی بفهمید این اولین باری بود بعد از دویست سال که اینا شکست خوردن این اولین پیروزی بوده ایران رو از دست دادن و حالا 5 6 تا کشور رو تقریبا از دست دادن دستشون نیست دیگه و انشالله در آینده به دست شماها نسل شما باید این تبدیل بشه به یک تمدن قوی مردمی در جهان که امام گفت اگر قدرت شر و غرب داریم ما باید ابرقدرت سوم بشیم منتعه نمثل اینا استعمارگر ما میشیم ابرقدرت مستضعفین ما میشیم بلوک سوم ابرقدرت اسلام برای دفاع از انسان اینا ابرقدرتا برای قاره انسان ها ان مطالعات توی قزایا داشته باشین شما دو سه سال سه چهار سال تو دانشگاه این تا کارشناسی بگیرید بعد کارشناسی ارشد و بعدم ازدواج و اشتغال و اینا یادتون میره یک برنامه در کنار درس و زندگیتون برای که همیشه انقلابی بمانید و مسئله اصلیتون دین جامعه مردم انقلاب باشه بقیش فرع باشه ولی بله زندگی باید مدرک مدرکتو باید بگیری، ازدواج، اشتغال اینا هست باید هم وزیفی تهم هم دنیا نیست، اونها هم آخرته ولی یه وقت قرغ نشین توی مسائل ما در آینده احتیاج داریم نسل شما ها در آینده باید نیروی متدین متخصص انقلابی دانشگاهی داشته باشیم که فری به رسانه های دشمن رو نخورن بازی توی این مسئله نخورن نتیجه که از این بحثی الان میگیرم درف چند جمله مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر حاکمیتی که در ده کشور در ست کشور کودتا جنگ، قارت، ترور، شکنجه، تحریم کرده میلیون ها نفر رو کشته بن است تجاوز کردن اینجا در برابر انقلاب ما تغییر شدن که 444 روز یک سال و خورده ای 55 تا نیروهای رسمی سازمان سیاه و وزارت خارجه آمریکا اینجا بودن و اینا حمله به تبس کردن شکست خوردن تحریم کردن تهدید البته تحریم ها از قبلم شروع شده بود تهدید بود و چه و چه و نتونستن فتحلانه یک حرکت تدافعی بود نه یک حرکت تهاجمی ما از خود ملت از خود اشتفا کرد هزار تا سیلی خورده بودیم یکی زدیم دفاع بود کشوری که از کودیتای 28 مرداد فقط 25 سال به طور 100 درست کامل بر ایران مسلق بود و میلیاردها میلیارد قارت کرد از ایران این حرکت فتلانه یک موج جهانی را انداخت اصلا, اصلا اولین باری که ابوهت امریکا تو دنیا شکست سر غضیه فتلانه بود امریکا یک قولی بود، شکست نپذیر بود. یه مرتبه دیدن یک جوانی آمد زد تو گوشش یه سیلی زد و این نتونست جواب بده. سرش گیج رفت و خورد زمین. این وضعیت از کودت های استبداد و دکتاتوری رو در این کشور امریکایی در درجه اول و با کمک انگلیس برقرار کردند قبلش هم انگلیس ها مسلط بودن ولی بعد دیگه تسلط سد درصدی کامل بود. بحرین رو شاه داد رزخان پدرش تو تمام مناطق مرزی بخشای بسیار مهمی رو به امر انگلیس‌ها داد به عراق که اون موقع مال انگلیس‌ها بود و به کشورهای اون منطقه که مال یه این ورداد به ترکیه که مال انگلیس‌ها بود بخشای از مرز او ورداد به افغانستان که اصلا خود افغانستان جزء ایران بود انگلیس‌ها از ایران جدا کردند. بعدم بهرین رو کلاً داد بعدم که اصلا بر کل ایران رو دادن یعنی کل ایران شد اصلا ملک تلغینا انگلیسی‌ها داشتن از دست می‌دادن تو نزد نفت بعد آمریکا آمد به کمک دوباره مسلط شدن سرکوب ملت ما در این 25 سال قبل از انقلاب قارت میلیاردها منابع نفتی تبعید امام هزاران هزار زندانی زندان‌ها ها شکنجه علما دانشگاهیان مبارزین بازاریایی که انقلابی بودن ساواک رو درست کردن یکی از مراکز اصلی شکنجه مدرن در جهان ایران بود بعد شاه تغییر می‌شد بعد اینکه امام گفت یه وقت من دیدم رئیس جمهور آمریکا اومده ایران اینجوری نشسته امام ادیشم در آورد گفت اینجوری نشسته عینکش هم اینجوری دستش شاه ما هم اینجوری واسطه جلوش من خجالت کشیدم که شاه ایران چجوری جلوی این مردک واسطه لایه کاپیتولاسیون آوردن کاپیتولاسیون یعنی ما بهتون تجاوز میکنه میزنیم میکشیم شما باید بگید که هر تو سلام، هر تو خودتون سلام این کاپیتولاسیون میدونین همین الان در نوت کشور جهان کپیتولاسیون حاکمه؟ میدونین؟ همه جا کپیتولاسیونه الان کپیتولاسیون به نفع امریکایی یه جای های انگلیس و فرانسوی ها هنوز کپیتولاسیونه حتی تو اراق هنوز کپیتولاسیون نفع نشده رسمن هنو نتونستن امام استاد جلوی قضیه بعد همین طور تا قتل های پونزه خورداد و چه و چه و بعد انقلاب پنج و هزاران نفر رو کش های نظامی طراحی شد بعد انقلاب های پایگاه شهید نوژه که یکیش بود قلاقم اصلا انقلاب پیروز شده بود هایزر رو فرستادن انقلاب پیروز شده آمریکا اول تمام تلاششون رو شاه بمانه ولی یه کمی دموکراسی بده سلطنت ولی بمانه امام میگه سلطنت هم نیست امام با آمریکا گفت اگه آدم باشی مثل زمان شاه نباشی ما با آمریکایم رابطه خواهیم داشت ما نفتم خواهیم فروخت مشکل نمون نداریم به شاید که دست از این جنایتتون برداشت همون موقع مشغول توطئه بودن. تو کردستان اصلی پخش می توی سیستان بلوچستان تیم ترور درست میکردن این آمریکا یا انگلیسا اسرائیلیا. تو کردستان تو خوزستان به اسم خلق عرب اونجا خلق کرد اونجا به اسم خلق بلوچ با کمک کمونیستا ها، منافقین ها سلطنت تلباس صواکی با کمک اینا تو آذربایجان به اسم خلق ترک رو انداختن توی ترک منشررا خلق ترکمن. تجزیه ترورا شروع شد انفجارها شروع شد بعد اسناد لانا آمد دیدن همه اینا اونجا هست کودتا رو انداختن توی کودتا آخوند و قطبزاده که جزء شورای انقلاب بوده او رو ملی ها بختیار و سلطنت طلب ها و جیب ملی و کمونیست و یعنی کمونیست و مرجع و ساواکی رو همه رو با هم دیگه جور جوری که خود هم خیلی خبر نداشتن توی یک طرح واحد برای کودتا بشه و امام خمینیون بشه انقلاب و اینا برگردن خب اینا همه شکست بخورد یکی یکی بعد تحریم و از همه تا جنگ شروع شد حمله کردن به ایران خب شما از این همه موانع، از هفت خان رستم از هفتاد خان گذشته رسیده به اینجا یک لحظه نباید باقی میموند همین سیزده آبان پنجه و هفت که دانش آموز رو برستن به رگبار تو خیابون جلوی دانشگاه تایران تا بچه های به مسلسل. جنرال هایزر سال 57 آمد ایران برای کودتا حتی برنامه‌ریزی کرد یک ملاقات کنند با نمایندهای امامیه ملاقات با بهشتی شهید بهشتی و با اینها داره منتها اون ملاقاتا شما ببینید چی گفتن و چی شنیدن ملاقات داره با بازرگان و ناز تا از اینا برید اونجا چی حرف می‌زدن همزمان ملاقات داره با های ارتش و که ایران داره به امام پیغام میده محضر شما رو به رسمیت می‌شناسیم که شما با یه خط قرمزه که ما میگیم رایت کنید خب ما در خدمتی ما حاضریم همزمان با ملیگره ها و لیبرال های مذهبی و خط رو به اسطلاح اغلا بازرگان و ایتیپا مذاکره میکرد که ما به شما کمک میکنیم شما خمینی و افراطیارو ها رو بزنیم کنار ما کمک میکنیم جمهوری اسلامی باشه دست شما باشه ما با شما مشکل نداریم با خمینی مشکل داریم با افراتی ها بعد همزمان باد داره با سران ساواک و ارتش ایران هایزر و سیا دارن کار میکنن که کودتا کنن میبینین همزمان سه تا کار بعد میبینین اینجا ارتش ایران نمیتونه کودتا کنه هایزر میگه برگشتم به رئیس جمهور آمریکا و به سازمان سیا و پنتاگون گفتم ارتش ایران از هم پاشیده بدنه ارتش سربازا و اینا با خمینیان با مردمم ما اونجا نمیتونیم کودتا کنیم ایرانم نمیتونیم حفظ کنیم فقط یک راه داره هم سازش نمیکنه یک راه داریم. به اختیار من بذار تا حال رقمش الان یادم رفته بذار تا چقدر ژرال ارتش آمریکا رو خودم باید انتخاب کنم افسر و ژنرال و نیروهای ویژه از اینجا با بخشی از بدنه ارتش و سووااک ایران که هنوز تحت کنترلن هن. بریم اونجا و کودتا کنیم میشه ایران رو فقط به ایشی و حفظ کرد. این هم آخرین تصمما های آمریکا اسناد لانه میگه ما باور نمیکردیم انقلاب بشه در ایران گم توسط خمینی. بعد باور نمیکردیم که ظرف یک سال پیروز بشن اینا. که 21 بهمن اعلام حکومت نظامی کردن از 4 بعد از هیچ کسی نباید بیاد, بیاد بیرون و امام همونجا اعلامیه داد که بر همه واجب است که بیان بیرون. که دیگه همونجا رژیم فروپاشی 21 و 22 بهمن دیگه ریختن همه جا رو مردم گرفتند. اگر به حرف کرده بودند اینا برنامه این بود که 21 بهمن 4 بعد همه تو خونه‌ها امام هم که تو تهران برن امام و اینا رو بگیرن و تو تهران و مثلا ده تا شهر اصلی تو اسناد هست نه. تو اشنازه سواک و ارتش و خود ها و مقالات اون موقع ها بعد خاطرات بعضی از های آمریکایی و ایرانی که فرار کردن هست برنامه‌ریزی کردیم که حداقل 100 هزار نفر رو تو ایران بگیریم و انقلاب بخوابه دیگه مردم بقیه میترسم بیان تو خونه‌هاشون بعد دیگه دیدیم این زمان او زمان او 28 مرداد نیست خمینی مصدق نیست این مردم او مردم نیستن و از دست دادیم همه چی رو حالا بعد شروع کردن دیگه به او گوته‌ای بعد از انقلاب چرا میگید مرگ بر چرا پرچم آمریکا رو آتش میزنید توهین به ملت آمریکا اصلا مردم آمریکا خودشون پرچم آمریکا رو آتش میزنن این پرچم رو نماد خودشون نمیدونن تو شهرهای ایالت‌های مختلف خود آمریکایی‌ها پرچم آمریکا رو آتش زدن گفتن این پرچم نماد و 1 درصد نه 99 درصد این پرچم وا نیست این پرچم سرمایه‌داری حاکم بر آمریکاست اون نماد آمریکا الان که تو 110 کشور جهان پرچم آمریکا رو آتش میزنن اول ایران بود فقط پرچم آمریکا نماد یک حاکمیت جنایتکاره. همین الانم که ما با شما داریم صحبت می‌کنیم دنبال ترور و تحریم ادامه داره. ترهاشون ادامه داره. و سلام علیکم و رحمت الله ببخشت.